بر مفرش خاک خفتگان می بینم، در زیر زمین نهفتگان می بینم، چندان که به صحرای ادم می نگرم، نا آمدگان و رفتگان می بینم. با رحمت تو من از گنه نندیشم، با توشه تو زرنج ره نندیشم، گل لطف تو هم سفید رو گرداند، یک ذرز نامه سیه نندیشم. تازن نبری که از جهان می ترسم، از مردن و از رفتن جان می ترسم. مردن چو حقیقت هست، زان باکم نیست، چون نیک نزیستم از آن می ترسم. تا چند اسیر عقل هر روزه شویم، در ده چه سال چه روز در چه صد ساله چه یک روزه شویم، درد تو به کاسمه از آن پیش که ما در کارگه کوزگران کوزه شویم.